حکایت. درویشی مجرد به گوشه صحرای نشسته بود، پادشاهی بر او بگذشت، درویش از آنجا که فراغ ملک قناعت است، سربر نیاورد و ارتفاط نکرد، سلطان از آنجا که سطوت سلطنت است، برنجید و گفت، این طایفه خرق پوشان، امثال حیوانند و اهلیت ندارند وزیر نزدیک آمد و گفت ای جوان مرد سلطان روگ زمین بر تو گذر کرد چرا خدمتی نکردی و شرط عدب بهجا نیاوردی گفت سلطان را بگوی توقع خدمت از کسی دار که توقع نعمت از تو دارد و دیگر بدان که ملوک از بهر پاس رعیتند، نه مرایت از بهر طاعت ملوک، پادشاه پاسبان درویش است، گرچه رامش به فر دولت اوست، گوسپند از برای چوپان نیست، بلکه چوپان برای خدمت اوست. یکی امروز کامران بینی، دیگری را دل از مجاهده ریش روزکی چند باش تا بخورد خاک مغز سر خیال اندیش. فرق شاهی و بندگی برخاست چون قضای نوشته آمد پیش. گر کسی خاک مرد باز کند ننماید توانگر و درویش. ملک را گفت درویش استوار آمد. گفت چیزی از من بخواه. گفت، آن همی خواهم که دیگرباره باره زحمت من ندهی، گفت مرا پندی بده، گفت، دریاب کنون که نعمتت هست به دست، که این دولت و ملک می رود دست به دست،